توت دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر الکابات دارت چون بلدی بخندی و چشم دل بباز با هر دل ببندی اش واقعا دل به سبزه پیچیده توی دنیا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 حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یک هفته ی دیگه یک رادیو پس فردایی دیگه با شماییم تا پنج و پنج دقیقه یا آینده برو بریم شی جون ببینی من اصلا کاری ندارم دلم میخواد هر روز که برنامه تو رو گوش میدم خوب. یه سه چهار بار سلام کنی اینو سلام با حالات که ما هم تیم کیف کنیم مرسی پس مرسی از شما خیلی من دی چرا چهار یه بار بیشتر که سلام نمیکنن دیگه حالا بچا چون شما دوست دارین من نمیدونم کدوم مدلیش شما بیشتر میپسندین مثلا اینجوری بگم سلام علیکم اینجوری یا اینجوری سلام به همه یا اینجوری مثلا سلام سلام سلام اما تا هر کدومش خب لطفه خواست خودشو داره میدونم دیگه حال خیلی ممنونم خیلی لطفه کردین تماس که دفتیم و اما و اما خانمه آقاین دختر خانمه آقا بسرها طبق معمول هر هفته شاعر رادیو پسورده شعر سروده این هفتم گفته که تو خونه تو مدرسه تو بانک و توی صف نون شب و روز زور میگیم ما آدما به این و اون تو خونه با لنگ کفش حرف و به کرسی میشونیم آخه ما فکر میکنیم بیشتر و بهتر میدونیم امو جون زور شنیدی زیر بارش خم نمونی پای قلدری که شد قوی و قلدور بمونی میکشن رو سرمون این هجابا و یه زوری رو نکنه عاشق بشیم یه وقت توی پیاده رو بهمون به میگن که هیچکس توی کهریزک نمرد زندونی ما نداریم کسی نرفت. کتک نخورد بچه ها نمیمیرن دیگه با بمب و دلهره به همون به زور میگن دنیا پر از دست گله با چما و لنگ کفش درست کارا پیش میره ولی دودش شاقبت به چشم و چار خیش میره با تشکر از شاعر زرگومون این هفته همطور که دیگه متوجه شدین رادیو پس دیگه نگذاشتی نه ورداشی. یه راست بند کرده به زرگوها میخوایم به زورم که شده این هفته هر هرچی زورگو و گلدر دورو برمون هست و اول باز کنیم یکم بالا پایین کنیم بعدم ببندیمش بره پی کارش. اینه که از شما میخوایم با زبون خوش گوش کنین شنونده از شما بنده میخوام با زبون خوش دارم میخوام بدون نیاز به هیچ گونه زورگویی سر ساعت نه میشینید پای برنامه ما شاید که کام روا شدید برو بریم آقا خوبین هاشم سلامتیین چه خبرا همه چه ردیفه دیگه دیگه اومدیم دیگه برگشتیم دوباره یه هفته دیگه شروع شد و موضوعمون هم که گفتم زورگویی، در مورد زورگویی و قلدری و قلدرمعاوی و اینا قراره این هفته صحبت کنیم مناسبت خاصی هم نداره یعنی باور کن اصلا زیاد به این رد صلاحیت‌های اخیر و سیستم همینی که هستش شورای نگهبان و مجلس لمح و اینا اصلا هیچ ربطی نداره دیدیم دیگه یک تا دیگه برنامه تموم میشه ما در مورد زورگویی یک از بنیادی‌ترین موضوعات تاریخ بشر برنامه نرافتیم بر هر حال دیگه این موضوع رو انتخاب کردیم اما امروز به طور ویژه میخوایم اولین سوزن رو به خودمون بزنیم و به زورگویی هایی بپردازیم که بیخ گوش خود بیخ گوش خودمون و در کانونهای گرم خانواده اتفاق میفته. پس همین ابتدای کار سلام خیلی مخصوصی داریم خدمت همه اون پدر مادرایی که آسمون زمین بیاد زمین بر آسمون هر حرف خودشونه و زن و که قبل از اینکه زن و باشند رئیس ومررووس و یه سلام ویژم داریم خدمت همه اون بچه که نه، تو زندگی نشنفتن و پدر مادر همیشه گوش به فرمان اوامرشون بودن و هستن یعنی واقعا دستون درد نکنه با این بچه تربیت کردن تو واقعا به بچه که تازه اومدن با هم خیلی خوب شفت کردن خیلی کارشون خوبه و اینکه چه کار خوبی هم کردی داری که بچه ها کامنتارو خوندن و با اون نقد قشنگ خیلی خوب بود امیدوارم از این به بعد این کارو بیشتر بکنی بچه ها بیشتر شکت کنن دم همه تونم گرد اووووو که رود این همه راهو الی و سعی تحویل بگیرین بله, بله بله واقعا خیلی خیلی خیلی ممنون از تماستون اینطوری هم ما کلی انرژی مثبت گرفتیم خیلی هم خوشحالیم که شما راضی هستین ما رو تحویل میگیرین مرسی واقعا بله سعید هم همچنان سکوت کردیم سکوت سعید سکوت <تصفح> میکنه فقط چند تا وقتا تو سکوت <تصفح> نه اتفاقا خیلی زحمت کردیم دیگه زور آره گوش و خیلی خوشحال شدیم و زحمت کردیم باز گجش دیدین یکی دیگه هست یک دیگه سلام، دلم میخواست بگم که چقدر برنامه ایستشم خوب بود اینقدر همکاری ایلیا سعید خوبه اینقدر مچن با گروه اصلا یه جور عجیب خوبین. آه آه عجیبی خوبین ممنوع گروه تو شما عجیبی خیلی خیلی آره خانوم خیلی ممنونم خیلی متشکرم واقعا خستگی در رفت مرسی بله واقعا واقعا ممنون بازم تماس بگیرید هی hey, تماس بگیرید هی hey, از ما تعریف کنید هی <laughs> hey, تشکر کنید هی هی از الیو سعید تشکر کنید <laughs> <laughs> <laughs> هی انرژی بگیرم خیلی ممنونم از تماستون ممنون از الیو سعید اما دیروز مدیر کل آموزش پرورش تهران تیه یک ای اعلام کردن که به زودی یک درس جدید قراره به دروس دوران دبیرستان اضافه بشه گفتین چه درسی هی گفتی؟ وسایه های امام؟ نه با با اونکه ما دانشگاهه از جون وسایه های امام خامنه ای؟ نه نه اینم نیست نه اصلا نمیخواد آقا عصب بزنیم من خودم میگم قرار به زودی کلاس های برجام در مدارس تشکیل بشه و در حال حاضر کتاب برجام هم تدوین شده به جان خودم اگه دروغ بگم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 بله دیگه پس اگه بچه دبیرستانی تو خونه دارین چشمتون روشن که قراره توی مدرسه براشون دکنار ریاضی و فیزیک و شیمی و این چیزا مبانی مذاکرات هسته‌ای و اصول نرمش قهرمانانه و چه می‌دونم سانتی ریفیو شنازی این چیزا هم تدریس بشه دیگه این چه میکنه این برجام حالا اینکه این, این چیزا حالا به چه برده مثلا بچه مدرسه یا میخوره و اینا احتمالاً بعد زمان بگذره تا متوجه بشیم دیگه ما که نفهمیدیم پرشی پرشی. جان جان. زده سی. اردبیل زده منفیه C نه بباش. اردبیل زده منفیه C. آدیشو خب. هواوی آدیشو زده منفیه 20. بازم بگو پرلک سرده. بگو بگو. آرتا هستم دماس. ساری. جدی انتوم منفیه 20. فیلز لایک منفیه C هم رف اردبیل. چه خبر آقا کلا این چند روزه می‌سکت خیلی از مناطق ایران سرد بودن را تخریب کردم. کامو بیش از همین وضعیت دیگه ارز با اذرتون که. برفم که میاد اونم برفی به این سنگینی پشت سوز و سرما هم بعد انتظار داشته باشیم دیگه چه خبر از رشت آقا مشکلی پیش نیومد چه خبر از رشت چقدر برف اومد اون پیش بینی های هواشناسی رو که آدم میخون نگران میشد تا یک متر برف رو هم پیش بینی کرده بودن حالا واقعا یک متر برف اومد خودتون خوبین الان آره خب خبر بدین ها خودتون های خوبین دیگه این هفته هم البته باز برف و بارون داریم که ما به موقعش میگیم خدمتون شما فرصت کردیم برامون از آب و هوای شهر و دیاره خودتون بگین و بگین تو این روزای سرد و برفی چه میکنین ببینین الان ببینید حامد ببینید چه این داره میگه حامد بگو چیه چیز داره میگه سلام فرسی جون من حامد هستم از تهران شب جمعه گذشته با دوستان رفته بودیم پیست اسکی آبری واقعا در موشا دمای هوا منفی 16 درجه بود بحبه. ممنون از برنامه خوبت به بیا تحویل بگیر مرسی حامد جان مرسی از تماس شما این دفعه رفتین جای مارم خالی کن سرده پلی برم باشه ممنون دارم سری بزنم بیرون آخه میترسم که برفا آب بشم زود سرد این شال منه که سرده میاد به تنه بیب جارت دست دوت جیب آو تو بقرم میگیرم بیب بریزه چیکه چیکه قندی لایه در دیوار تو دست تو هم منظور کندی من همه سرچی فرم فور باشه در بیا امینا رو نمیبینی تطیداد به تطیداد این گولد صفی دار میبینی داره میاد تو صورت نخص هستن چیزینی سرده چه خوابی دارن همه داستان دارم و هم داریم با هم چیکایز آپ پی سی سرده سرده سرده آقا سرده اینجام سرده ظاهران همه جا سرده خیلی سرده به داد برسید دیگه کلکل آب و هوام دیگه راه افتاده دیگه بر بچه ها همه زنگ می‌زنن از آب و هوا ها میگن کل امنیار میخوام بخوابونن از سردی آقا برو بریم سراغ زورگویی و قلدرمعابی در کانون خانواده وقتی کمربندها و ملاقه ها و دمپایی ها سخن میگویند. با نام یییه شماره 974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 نخدار خانم ماو به سراب این هفته به ما بگین که تا حالا کسی بهتون زور گفته این سوال این هفته‌مونه کسی تا حالا بهتون زور گفته خودتون چی تا حالا مثلا با قلدربازی زورگویی جای کار خودتون کار خودتون رو پیش برдин یا نبرдин این سوالمونه کسی تا حالا بهتون زور گفته یا خودتون به کسی تا حالا با زورگوی بازی مثلا کارتون پیش بردین یا نه این هفته کلن از خاطرات ها و زورشنفتنهاتون زور بگین بلکه اگه مورد ستم قرار گرفتین یکم سبکشین اگه برعکس بود خدا از سر تخصیراتتون بگذره زعید از کامنت ها چه خبر؟ اینستاگرام، فیسبوک؟ ولی بله آقای بهروز ووسوقی ها حمید عطایی و ام سخندانی مهم. در اینستاگرام همگی با هم اتفاق نظر داشتن که این پس کله همون پس کله خودت پرشیجان <تصفح> <تصفح> تازه با استمپ همین شده <تصفح> ولی آقای مارشال آقراوی فیس فیسیت نوشتن که جان چه پس گردنی داری فکر کنم حاجی حدود الهی رو روت اجرا کرده دیگه من اینجا قلاف میکنم فرشی جان بله خودت جواب گو باش ما هفته پیش هم گفتم این علایق دوستان یه مقدار حالا خصوصا آقایون به بنده داره یه مقدار زیاد میشه یه مقدار خطرناکه این ترسناکه دیگه اولا پس کلم دیگه آقا جون و جان و اینا داره نه واقعا پس کل است دیگه جای دیگه نیست که اون از اون که تازه هفته پیش یکی دیگه میگفت شما که میشه فرچید لخشه ما گرم شیم. حالا من نمیدونم کلن بر بچه ها دنباله چیزم. خدا آخر وقت ما رو بخیر کن دیگه چی دیگه چی داریم خانم لادن تاجا تو اینستاگرام کامنت دادن که کلن از بچگی به به میگفتن یدی چون قلدور بودن حالا هم به همسرم زور میگم چون اگه گوش نده با مشت میزنم توشی کمش بوح بوح بوح. واقعا نه خانوم. یکم مهربونتر تو رو خدا راهی بهتری هم هست واسه دلبری کردن و در این حال زور گفتن بله بله واقعا خیلی خطرناک بودن ایشون بله آقایم هستم به اسم آقای نشانه من در اینستاگرام که خیلی مظلومانه نوشتن یکی از زرگوترین آدم های زندگی زن منه آخی آره من همینجا تو همین لحظه از خانم این آقای نشانه من به عنوان یک زن در برابر یک زن خواهش میکنم اینقدر بهشون زور نگن اینقدر بهشون فشار میاد میان رو سوشال مدیه های ما با اسم مستعار درد دل میکنن آره، درست نیست خوب درست نیست واقعا خیلی من اصلا دلم از کباب شد, شد. <تصحق> <تصحق> <تصحق> خیلی مظلوم بود <تصحق> خیلی دیگه. یاسی 987 تو اینستاگرام کامنت دادن که جالب ملت اینجا کامنت نمیذارن سلماز حقش نبود بره از دیشب تا الان هر جا رو نگاه میکنیم همین دغدغه شده عجب این سلماز آقا سلماز استیجو میگن دیگه آره، سعید آره آره سلماز استیج که استیج. استیج آره مونایی که نمیدونن نشنیدن سلماز استیج زارن دیروز دیشب توی برنامه وقتی که قرار بود بخونه برای که داورا رای بدن اومده هر چیزی گفته بله, بله. من به خاطر مسائلی که پشت پرده داره اتفاق میفته ترجیح میدم از این شو خدافیسی کنم این چیزی صدای این صدای سولماز بود خب دیگه آره چی داشتیم همون که هم کامنت گذاشته بودن تو فیسبوک که حالا در جریان نبودن که خانم یاسین رو نوشتن اومده بودن خایژن راجب قضیه سولماز تو مناتو جواب ما رو بدید پشت پرده چی نشون دادن مگه خواهش هم اونو به فریاد نشون ندان یه وقت قه کنه بره ما نمیدونیم چی کار کنیم ولی ما هم نمیدونیم چی کار کنیم ایک فریاد بره حالا دیگه خانم سرماز واقعا چرا رفتی؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ چرا <تصفيق> سعید کرمانشایی از لندن، انگلیس، سامان از دویزبورگ، شهین و بهمن، جکسونویل، آرش از یادابران، احواز، جابر زاهدی، محله، خاجه عطا شهر بندرباز، پرهام و پرنیان از لندن، میمیجون از تهران، رضا شب خیر از گلن هالمان، آرامخان از استرالیا، ایوب از سیدنی استرالیا، یاسمن مشتبه، اشغولی ها از کرمانشا، الهام و الیکا تورنتو، امیر نمیر از تهران، موموز، از خنج فارس علی از قزوین بعد ندا دو ساله امضا میزنم دو ساله امضا میزنم ها دو ساله نیست ندا نمیگی دو ساله امضا میزنم تو اسممو نمیگی ای زورگو اسممو بگو از شیراز و حامد انگلیش تیچر رو رستم مرغ عشقش رستم مرغ عشقش از تهران پیروزی 400 دستگاه امضا کردن اینا همه کسایی بودن که امضا کردن پای اپلیکیشن رادیو پسفردار و آیوه سیاشا آیفون و آیپد اگر خواستید با ما در تماس باشید پسفرداردیوفردار.com ایمیل ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساوند اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید اپلیکیشن رادیو پسور رو را میتونید دانلود بکنید اونایی که آی او اس دارن و از آیفون یا آیپد استفاده میکنن صدای خودتون رو به گوش ما برسونین و یا صدای ما رو بشنوین یعنی برنامه ها رو میتونید دانلود بکنید و صدای رادیو فردار رو از طریق همه اپلیکیشن به صورت زنده داشته باشید تلفن های ما دوسف 420, 22, 11, 24, 133 و 163 و اونایی که از داخل ایران تماس می گیرن دو دیگه حسش نیست که میگن حالم بدیس و میگن آزادم شو بیست دیگه حسش نیست دیگه حسش نیست چون من مثل طلعنها خاستم پر از انباه داردم دیگه حسش نیست بریم سراغ زورگویی و قلدر معابی در کانون خانواده وقتی کمربدها و ملاقه ها بودم پای ها سخن میگویند. استاتوری و ازورگویی در اصلی شش برمیگرده به کجا؟ اگه گفتین به بیت رهبری؟ دوران شاه خدابیه امرد؟ به دوران طلایی امام؟ اما به حمله مغل نه نه، ریشش برمیگرده به همه خانواده ها شما توی هر خونه ای که برین می‌بینین یا پدر سالاریه، یا مادر سالاریه، یا الان جدیداً بچه سالاریه. خلاص این نفر آقا اونجا سالا رو برای خودش تشکیل حکومت داده فرمان روایی میکنه. البته همیشه این زور گفتن و گلدر معابی توی خانواده به شکل بابای بیعصاب و دست به کمر و یا مادر ملاقی کشو و چادر به کمر نمود پیدا نمی کنه ها اینا مال قدیم بود البته الان هم مالا شاید باشه ولی در کل الان شیوه زورورزی در خانواده عوض شده و ما شاهد پدیده گلدوری نرم توی خانواده هستیم یعنی چی؟ یعنی مادر خونر میبینی که عزیزم و قربونت به شم و اینا از زبونش نمیفته ولی این یک فرعون داره توی خونه حکم رانی میکنه کسی از یارای مخالفت باشو نداره یا بابای خونه دست بزن نداره اما ابزارهای کنترل کننده ای داره که شما بدون اجازش آبم نمیتونی بخوری این داستان البته در مورد بچه سالاری کمی فرق میکنه که حالا در مورد صحبت میکنیم بعدا شینه من دلی داره یعنی یعنی روحانی رو چی برده بودن از این این نه آه چی مدستمشون بوده از اینا که تو این کاخمخا میذارن این خارجه کیا <تصفيق> خدایشم تی ما که نفهمیدیم چرا این خارجی ها اینجوری میکنن خب شبان این همه زحمت میکشیم مدستمه میزازی این هوا خب یه پرسی شلواری فیرانی یه چیزی هم من دازه دیگه <تصفيق> والا خب یعنی چیکار کردن اینو حالا روحانی رفته لباس کردن تن مدستمو نه تیبه کارتون زونه با. یعنی از این کارتون های یختال و اینا اوه اوه چه با مثل این که تی دیگه شما که تیه حالی دیگه مثلا یه رویاروی از این خارج مارد بیاد از عکس امام خوشش نیاد بعد اینا بگیرن تی اکس امامو بپوشونن <تصفيق> تیه ایمالو خیلی حال دادن ولی این خارجکی ها کدا بوده داش داشت ایتالیا حالا ما چه نرفتیم ایتالیا ولی اون قدیم ندیم زبون که بودیم این تیم های فوتبالشون رو خیلی حال کردیم ماششون دیگه مو یارو تیمه بود که پیرنش مثل لونگ بود سیی بود؟ میلان آره میلان زونه؟ نش پرسپولس که سرور حزنگش گذا بود اون مادرش هستن شما آبی که نیستی که زونایی اگه آبی بودیم هم این اینجا پیات میکردم <تصفح> نش شوخی میکنم. مطافر ما رود سه تش بله والا سه که تا من تیم میصرفیده برای این خارجی ها دیگه پوشوندن ما دست رو دیگه والا واسه ما هم به صرفه میکنیم این کارو من خودم زونه شما تیم یه بار برام رفتم وسط رخصیدم باش <تصفح> هرام آره مطافره همونو میخندنیم کرایمونم میره بالا فکر نکنیم افت و مسلم نیست؟ والله مزونه شو میگردا ای تاکسی خالی تو رو به خدا ده بیا بیا شدم بیپا دارم میافتم وسط خیابون ای خانم طلا بفرما بالا عشق نیا که دیگه میخوام دوباره بشم شوپر بیا خدا رحمت کنه ننه و با بابا خدا رحمت کنه مادر شمارم خانم خدا نیگردر قوم و خیشاتو خدا شمارم ازده بده صبت حالا بودم خمار تاکسی میدونم میدونم خدا رو شک شدم سوار تاکسی خدا رو شد الاهی شد اما یه حاجاغایی هستن که سمتشون معاونه فرهنگی دانشگاه آزاده تبریزه ایشون اخیران یه مصاحبه کردن با مجله حریم امام و یه حرفایی زدن که آدم فقط داره با شنیدن این حرفا بودوه بره تو افق گمشه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 گفتم شما حرف از نظام کارگری میزنید آیا هر نفر مردم روس و اتحاد جماهیر شعروی میتوانند کالسکی زرین سوار شوند؟ گفت نه گفتم آیا این است شعار ادالت خواهی و نظام کارگری شما؟ بله این صحبت های امام امت بود به گفته ایشون بر اساس گزارش های دریافتی رادیو دیو اصلا استالین بعد از این استدلال امام امت کلن ترکید رفت هوا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 که شما در ایران نمی توانید شاه شاهب آنها گفته که بالاخره علما اینطوری هستند و این هم از همه آنها تیزتر است. دیدی تو رو خدا یعنی امام امت از همون دوران اون شبابشون یه چیزایی تو خودشون داشتن که باعث می شده یه طرف ایشون باشه اون طرف چرچیل و استالین و روزویلت و شاه و اینا واقعاً اما امامت خوبی داشتیم ما واقعاً نمی‌دونیم چرا وقتی ایشون خودشون به سلطنت رسیدن و پادشاه اون ملغورای دنیای اسلام شدن یهو یه جوری شد که کلاً منطقه قاوره میانه رفت رو هوا خیلی از ایرانی‌ها هم در اثر رهبری ایشون و نائب بر حقشون از یه هفته بعد از 22 بهمن 57 که هنوز شما پد نکرده بود میگفتن نور به قبرت به بار چه غلطی کردیم این خمینی‌ها خیلی بی‌عصابه بابا برگرد بیا دقیقاً ما از خود آدمی است که می خواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن خامران ملکموتی سلام سلام پسی جان سلام همگی وضع احوال هنری در چه حاله؟ اونم براتون بگه که فردا شب فردا قرار مراسم افتتاحیه 34مین جشنواره فیلم فجر توی تالار وحدت برگزار بشه کارگردان مراسم مجید برزگر سه تا مجری برنامه رو میگردونن تا این لحظه اسم مجری و اعلام نشده ضمنا تو همین مراسم مرغ بلورین به بهترین بخش عکس آنونس تیزر و پوستر داده میشه البته هنوز معلوم نشده چه گروه یا خواننده قراره توی مراسم برنامه اجرا کنه اینم <تصح> پس فعلا یه سالون داریم یه کارگردان میدونیم که قرار جایزه داده بشه دیگه تازه برنامه بستگی داره که امشب آره چه ساعتی سالون رو تحویل بدن چون همین الان که داریم با هم حرف میزنیم گروه آلمان که برای فستیوال تئاتر به ایران اومدن در حال اجرا هستن حالا تو 20 ساعت آینده چقدر از دکور آماده بشه دیگه گردن من نیست گردن کامران نیست دیگه دوستان دیگه کی آماده نمیگم نمایش فیلم از چه روزی شروع میشه کامران از دوشنبه خب رسما نمایش فیلم‌ها شروع میشه که خب تلاش میکنیم به این تا جایی که ممکنه فیلم ها رو معرفی بکنیم یکی از هایی که قراره تو بخش مسابقه به نمایش در بیاد فیلم دلبریه به کارگردانی جلال اشکیزی با بازی با بازی هنگامه قازیانی آتلا پسشنی و عباس قزالی که بخشی از صداشو با هم بشنوید بشنوید حرکتو داشتیم داشتی شدم برات بیارم من اذیت نکن دیگه درم میخواد داد بزنم نمیتونم درم خود کل این خونه رو به هم بریزم نمیتونم یه از هاولین باری که بهت گفتم میسم جان گفتی واقعا جان گفتم آره میسم جان حالا تو به من بگو میسم جان هم داری. بخشی از صدای فیلم دلبری ساخته جلال عشقیزی رو شنیدیم از موسیقی چه خبر؟ آلبوم جدید چی داریم؟ روز پنجم سام اسدی بعد از 7 سال جدیدترین آلبومش منتشر کرده فرشی جان اسم آلبوم شونی خالی کنه جمعا 9 ترانه از جدیدترین کارهای اسدی تو این آلبوم جا بری شده. بسیار خوب میریم به اتفاق بخشی از یکی از کارهای این آلبوم به اسم شک نکن رو می‌شنویم و با کامرانم هم خدافیزی می‌کنیم تا فردا. تا فردا خدا نگهدار. وقت میخندید دنیا تو دسامه وقتی غمگینیه بوغزی هم رومه وقتی چشم تو یه احساسم آرومم بی تو ازیش و از شادی مبهومم تو وقتی اونومی وقتی خاطره تو نت واسو نت تو وقتی فهمینی زندگیم بدون تو بدون تو تو وقتی اون شغی آسونه آسونه تو با ویو سلام شنبه شب را زمین تغییر از انداختن چند عکس یادگاری توسط یک پهپاد ایرانی از ناو هواپیمابرد ترومن آمریکا در خلیج فارس با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای صاحب گذشته آغاز مینمایی جلوگیری پلیس از تجمع دانشجویان بسیجی در برابر وزارت نفت در اعتراض به قراردادهای نفتی تازه ایران با کشورهای خارجی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 امتناه کنند آقای میکروفون تلا تگرگی دیگه چیه؟ طب تگرگی دیگه چیزی؟ آخ، آخ، من ای... یادم بود این طب اسمشی ربطی با و هوا داشت ولی آه. موقعی که می نوشتمش یادم نهیم دقیق چی بود درستش طب بدفکی بولی بولی بله. با عرض پوزش در همین رابطه یکی از کارشناستان دامی کشور به خبرنگار ما گفت جالب هست که کشور عربستان تا همین امروز هیچ م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 کیلومتر بله همانطور که میدانید حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پاریس قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری را با شرکت فرانسوی ایرواس امضا کرد به همین مناسبت و به منظور تاییه گزارشی از سرعت هوایی ایران با کارشنانس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جامسرهنگ به یک سفر هواپیمایی آمدیم تا برای شما عزیزان یک گزارش بلنه. هوایی تهیه کنیم بح... سرنگ جان سلام علیکم بفرد بله هم از پرازی آسمون در خدمتی شنوندگانی عزیز هستم سرنگ الان شما بح... میشه توضیح بدین که چرا انقدر تریب کلبانی گرفتی به خود کلبانی دل... که یکی دیگه بح... بح... است من کنم که خوب بنده با توجه به دوره های متعدد دیگه ام... گزروندم برای سرهنگ شدن کلبانی هم یکی از کارای دیگه ای است که بلد هستیم دیگه بی دیگه بح... عدل یه واش خلبانی میشید نه کاپتانی هم زدیم باید. ما چی نگفتیم دیگه دور بعد نذید فکر کردم خلبانیه شما مش خلبانیه سردار قلیبا آوایی عزیز این چه جور حرف زدنه این حرف ها چی چی هم بند، هم سردار قالی باب خلبان های قابل هستی ما گفتم ایست که جون خودم در خطره و کردم گفتم این خلبانیه دیگه فرمونی بده دست ببینیم چیکار میکنید عزیز ولی باش من... کن شما میگی خلبانی ما میگیم خلبانی شما اومدی تو ارتفاع حالت نگردون سا. ما بازم یارس ندارنش ماشانت زی ما. با واش وایش. سراغین هواچا چی؟ بله هوا رو جای فرو میکنه یعنی هواچا. جا. هواچا جا. چی چیه جو هوا نا جا رو میگوییم ما. همون بابا هوا چی هوا ناچا؟ هم... آه هوا ناچا واحدی هوا پیماهی ناچا یا همون نیروی انتظامیه. اینجا آدم بگن هوا نیروی انتظامی دیگه هوا جا دیگه چی؟ میگم هوا ناچا عزیزی من نمیشنوفیش شما مسکوب. واش وایش با. همون که تو میگیری. حالا سرن این تو ادعای خلبانید میشه برای ما بگو اوزای هواپیما های ایران چجوری بود تا قبل از این تحریم بل ارز کنم که خیلی اوزای بدی داشتند، شما کلن تو کشورمون ده بیست و 6 و ششتا هواپیما داری از این تعداد فقط صد و تاش میتونن پرواز کنن خسته نباشن خب اونا که نمیتونن پرواز کنن چی؟ هیچی اونا... دیگه اونا پارک شدم تو فرودگاه ها خب دیگه. عموم شد ای. اونا ما الان توی هواپیمای نو نشستیم بله. چی چی میگی ما هواپیما نو کجا بود آقا؟ همین دیگه همین هواپیمایی که ایران الا خریده نوان ان دیگه سر نه بله اونا که نوان ولی حالا کو تا اونا برسم به دستمون عزیزی من. چرا شوخی نکن دیگه. ما همین الان یک از اینا نشستی. یعنی این هواپیمایی که توش نشستی؟ دیگه. نه آقا این که مال اجازه بدی من کنم. این مال این هواپیما مال سال 1907 تا 5 است. سرایی زیاد نکن ببین من جنبه این شوخیالا ندارم ها سرایی ببین من از زیاد چی هست مامو شما شوخی داره این هواپیما هم هواپیما است که اش سال پیش پهلوی بود میرم تازی کیشا میومد جان یعنی مالا چهلی بله سال پیش این؟ بله دیگه زرنگ تو من گفتی بیا بریم هواپیما تست کنیم من فکر کردم الان منظورت بیا بریم این هواپیما جدیده رو تست کنیم این آخر... شما خیلی خوش خیالیم است که هن... هواپیما تازه قرار است سال 2019 شروع بشه تحویل دادنش سال 2019؟ بله بله مرگ من سن... سه سال دیگه یعنی؟ دیگه دیگه. یا خدا یا خدا نه حالا شما گسته نخواهی هواپیما کپتانش الان به من گفت فقط یکم روغن سوزی داره که اونم این مشکلی نداره روغن سوزی بله بله متاسفم میگم حالا که اگه این های به مشکل بر بخوره تو بلدی بگی کمک این کاپیتان دیگه خودت ما تو طرهنگی تا سر این هواپیما خوندیم متاسفانه من به این سیستم موارد نیستن بمیری سرهنگ رسن هم خلبانی تام بشه دیگه که این هواپیما پایینتر که میشه کایت دیگه آقای خدا سرنگ چیزی نیست این چیزی نیست با گشتان بری برزید دواره هیستون های مطباری سبتا راست خاطی کرده است ها. من کاملا مزن... الان متوجه شدم بایی توضیحاتی کنیم درنگ فوش بد میدمم بزر, بزر بزر بزر بیریم کپیتانه داری یه چیز میبینیم بسر این از بید ما هم اکدون بر فراز آسمانه داریم که چاله هوای بدی و چاییم روش میرید اطلا نگران نباشید همه چیز درد کپیتانه اونگرده کاپیتان دوم بالا قند با چایش میخواد بخوره دیگه آقا چیزی چی میشه غند قند چی هواپیما داره سقوط میکنه حالا چی چی دارد دارد. ای چی میگی شما کاپیتان ایرانی به این بازی از عزیز من عادت داره من برام خوش کاپیتان عالی لازمم چای چی قند چی حالا این فایصه نمیگی ما داریم سقوط میکنیم کاپیتان الان من دیگه عادی فدیه الان میارم براتون آه... چیه اینا چرا اینجوری میکنن من جدیام های های های من نجات بده نه های کمک کمک بس هاجیمو چی میخواد کمک من نباصم برای مردن اصلا مناسب نیستا خوده این فرصت دوباره میتنی تو میفهم بدی سر زمین حقوقای گلدبولو خبرو بهش میدم دیگه نمیکونم درست کردم خوده قرار به این ماجرای دختره واقعا کار بدی بکنه بودن این نفس بر من مستولیم شد یه فرصت دومانه بده خدای کاپیتان جون مادر تو استقان چایی رو برگو برموده بود جزه آردی داره میخونه واسه من کاپیتان سره ببینید باورم نمیشه موص برنامهد زور گوه همین امروز از معدود دفعاتی بود که واقعا به من زور گفتن اونم این بود که امروز رو رفتیم دکتر و همسرم به زور منو مجبور کرد که آمپول که دکتر تجویز کرده بود و بزنم و صبحم با قهرم میدونم که این برنامه رو گوش میکنه اشکال نداره دیگه حالا دیگه به هر حال تجهایی که از قدیم و اعمال زور و ت به خشونت اشکال نداشته تو تضیقاتتی بوده دیگه. یعنی چی آمپول نمیزنم نمیشه که آقا اگه برنامه رو میشنوی از طرف ما دست درد نکنه و هر حال خیلی ممنونم مجبورشون کردی که آمپولشونو بزنن آمپول در ترس نداره که اه. از اونجا که اه, قدیما امکانات کم بود و از طرفی همه چیز ارزون و فراوون بود پدر مادرها تفریحی جز تولید مثل نداشتن خب هر خانواده 6.7 تا گایی تا 9 تا 10 تا 12 تا 15 تا همچه بچه داشت تو هر خانه میرفتی همچه مثل نقل و نباد بچه زید دست بود دیگه برای همین کلا کسی بچه رو زیاده جدی نمیگره و از آدم حسابش نمیکرد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 راستش من هرچی قول قلدور بازی دیدم تو خانواده ها یه توجیه تربیتیم پشتش بوده مثلا می‌خواستن رو مسئولیت پذیر تربیت کنن هنوز قدش اندازه‌ی سطل شهر داری نیست میگن بعد پلاستیک زباله رو بره بندازه تو سطل یا مرده زنش به خطر قضیه که تاش سوخته و فضیحت میده اگه دست به زن نداشته باشه بعدم میگه بعد تربیت بشه یا زنه در خونه رو مرده باز نمیکنه تا شب ماشین بخوابه تربیت شه یه لیست خریدیش نره اینقد از این ماجره ها هر روز تو شرکت میشنوم دیروز خانم منشیمون با پای چشم برام کرده که اومد شرکت همه تعجب کردن آخه خب معمولا هر چی بودیم این بود که تو خونه شون این خانم منشیه که قلدره و زور میگه به شوهره یعنی با اینکه خودش کارمنده یه هزاری از حقوقش هم خرج خونه نمیکنه و شوهره با حقوق راننده تاکسی تا خرج لباس و آرایش من باید بده خلاص وقتی همه دورش کردن که چی شده گفت هیچ چی که میخواست پسندازمو بدم بهش تصادفی تاکسیشو درست کنه ندادم مشکوبید توی صورتم و همینطور که داشت با آب و تاب تریف میکرد چطور مشخورده یه در شرکت باز شد دوتا مامور پلیس با شوهره که کلش باند پیچی شده بود یه پاشم لنگ میزد مدن خان رو دستگیر کردن به جرم شکستن سر شوهره با گلدون و سوزوندن پاش با آب جوشی کتری اشید سلام خواهد خواهد یادش به خیر یه زمانی با هواپیما ها تو ایران سقوط میکرده چقدر زود گذشت رضا هستم از سویت آقا جان رضا جان این کجاش آخه یاده بیادش به خیر داره آخه گربونه شکلت بعد شما بزهاره ایرباس ها برسند بعد دل هوای قدیمو بکنه الان فقط فعلا رو کاغذن عزیز دلم گربونه شد ادای شد میگه او بیه او بیه چیه میگه او بیه او بیه, او بیه اه ها حس خوبیه متوجه شدم خیلی ممنونم که اصلاح کردی دیدین بعضی وقتا وقتی میرین توی چون حالا بحثمون بحث زرگویه و توی خونواده و خصوصا پدر سالاری و مادر سالی دیدین میرین توی خونه هایی که پدر سالاری و چه شکلیه یعنی همه چیز دقیقاً باید مطابق میل آقای خونه باشه مخصوصاً وقتی آقای خونه مثلا پای تلویزیون نشسته لم داده که دیگه هیچ دیگه واویلاست تصور کنی؟ فکر کنی؟ فکر کنی؟ پدرجان گرامی با سلام میشود لطفا کنترل تلویزیون رو بدهید ببنده؟ کنترول تلویزیون رو میخواد چکا بچه؟ الان فینال مسابقه برترین خواننده بهتر با پشت پرده های جذاب و دیدنی شروع میشه بعد بر... شروع میشه م... که شروع میشه. م... به تو چه آخه؟ تو در سماش نداری مگه؟ م... پدالی گرامی من مانی مسابقه رو از وقتی شرکت کنم به گونم محترم اون صدای خورسقندی داشتن دنبال می‌کردم و الان که مرحله آخری آه. اگه نبینم کل این مدت که دیدم هم هدر رفته و حیفه میشی دها ده برو بچه اینجواین حساب بابا داره تلویزیون نگاه می‌کنه خودش برو ببین خیلی ببخشید پدر گرامی و بزرگ بوده بندش شما که دارید ناخن می‌گیرید تلویزیون هم که داره صحرای زندگی فیتوپلانکتون‌ها رو پخش می‌کنه خب لطفاً ایشون چی می‌گی تو دار... بچه دیوونم ب... کردی دی. ب... چرا قلی تو پرو شدی آخه آره. زمان ما بامامون یخ میکرد ما تا یه هفته از اتاقمون جارت نمیکردیم بیاییم بیرون آره تو اینجوری هاست اشکال ندارد من م. خواستم مثل یک پدر و نوبوه بشینیم و مسائل رو با هم حل و فصل کنیم اما خب طرز فکر سنتی و باپسگرایانی شما مانه از این کار شد دیگه نه مثل اینکه دل جدی جدی کمربند اه. میخواد تو همان فرض میکنم چند مامان. این مسابقه بهترین خواننده برتر داره شروع میشه بابا نمیذاره بزنم اون کلا کی میگی بچه اه ها خوب شو من کنترل تلویزیون مال تو اده چرا مادرتون با تو این مسائل میکنی آخه خیلی متچکرم پدرگیرمی برای اطلاعتون عرض میکنم تکرار این فیتوپلانکتون ها رو که داشتی میدیدی فردا سب بازم نشون میده یعنی دو دقیقه ما توی این خون تو آسایش نداری بله البته انگار خونه مادر سالاری بلیش های کن بوده بیشتر برحال این هم یه جورش بود دیگه فریبورز غریب سلام چه خبره؟ سلام سلام به همگی فرشید جان از دیشب تا حالا تو سایت‌های مختلف ورزشی این دو تا جمله عراق جنگ زده به المپیک رفت و مانه و فوتبال ایران در استصاد و عراق در المپیک یه جورای هوادارهای ایرانی رو قلقلک میده دلشون رو سوزونده واقعا حال عراق رفت المپیک مگه آره دیشب رفت تو رده‌بندی آسیا 2-1 قطر رو برد و بعد از کره و ژاپن بعد از ژاپن و کره المپیکی شد تو چند روز اخیرم فرشید کلی بحث بوده تو محافل ورزشی که چرا ایران نرفت المپیک این حرفای حسین فرزامی پیشکسوت فوتبال گوش بدین که از این زاویه به ماجرای حفه ایران نگاه کرده بشنبی. آقای کاشانی چیکاره بوده چرا بعد بیاد صرفا ملی بشه آقای کپوشیان اینا حق بازی بزرگی مثل آقای بهزادی مثل آقای زلی مثل دیگران بوده که اینا بشن سپرستیم ملی آقای کاشانی چی کاره بوده؟ تو فوتبال چی کاره بوده؟ که شما میگذاری سپرست گوته نه واقعا چرا با این همه پیش فوتبالی ها چهبی به کاشانی رو گذاشتن مدیر تیم ملی؟ جان جنالماییت هم دا افتاده ها دیگه دیگه. شما معلم بودیم دیگه. خواهش میکنم اینو میتونم بگم که فرشید آقای حبیب کاشانی تو شورای شهر تهران چند ماه پیش هم بفته بود کربلا زیارت و حدود به گفته خودش 500 میلیون تو هم واسه یه تیم امید از خیرین کمک گرفته خب ان دفعه دفعه دیگه یکی از مقامات کمیته امدادو بزارن سرپراست تیم شاید تیم صعود کرد دیگه دیگه چیکار کنیم دیگه آه. چه خبرو دیگه دیگه از خبرهای دیگه ورزشی دیگه آخرین خبر امشب هم فرشید جان فوتبالی سینمایی با اجازه کامران عزیز علی کریمی کاپیتان سابق پرسپولیس یه جورایی گره زूर्گویی و قلدرمآبی در اومده و اونطوری که یکی از سایتو نوشته بعد از اون ماجرای کاشان توهین و سرهاشی به خانم معتمداریا از ایشون با این, این جمله اینجوری حمایت کرده بانوی سینمای ایران افتخار سینمای ایران بله حالا با این همه طرفداری از خانم معتمداریا شد حالا امام جومی کاشان یه دوسم اعضای عمومی لام نکنه خوبه واقعا. نگران اونیم. ممنونم ازت فریبورد ز گریب با خدا فزی میکنیم تا فردا. تا فردا شب تا چنگه تر. پگولاده پگولاده روزنامه روزنامه پگولاده روزنامه روز پگولاده. روز روز روز بیش روزنامه ای آرمان امروز به نقل از آیت الله موسوی اردبیلی درباره حذف اصلاح طلبان از انتخابات تیتر زده بود که برخورد حذفی به زیان کشور است. سود و زیانش رو خود معظمله باید تشخیص بده که ظاهراً تشکیس دادن حذف اصلاح طلبان به نفع کشور دیگه تموم شد و رفت آقا روزنامه ابرار به نقل از رئیس قوه قضائیه امروز تیتر زده بود که 15 میلیون پرونده بلا تکلیف در قوه قضائیه 15 میلیون اینجوری اگه هر دعوای فقط دو طرف داشته باشه یعنی نصف جمعیت ایران تو قوه قضایی پرونده بلا تکلیف دارن که خسته نباشیم همگی روزنامه جامعه جمع وابسته به صدا و سیما امروز تیتر زده بود که اعتماد 82 درصدی مردم به اخبار صدا و سیما بله اعتمالا نظرسنجیشون رو توی خود سازمان صدا و سیما برگذار کردن پاشون از سازمان بیرون نذاشتن دیگه اینجوری بوده 83 درصد درمان از دفتر پسوردا هم ورخ خورد ما دما گاهی برای فرار از فراموشی به آینه فناه میبریم تا شاید تو نگاه های اون من روبرو دنبال گمشدهی بگردیم که یه روز یه جای این قصه جا گذاشتیم یه عشق، یه حس، یه خاطره یا حتی کودکی که اگه خوب نگاه کنیم لابلای تارهای سفید مو و ردپای زمان هنوز میشه برق چشمهاش رو در آینه دید شبتون خوش تو آینه یکی هست که بعد تو با سکوت و من زندگی میکنه پر از التماس نگاهش هنوز هنوزم داره بچگی میکنه تو آینه یکی هست که حالش بده بریده بریده نفس میکشه یه دریا چه گونه هاش گونه ولی داره روی عکسه تو دست میکشه من این شهر رو باید فراموش کنم مثل پرسه هایی که با زدی. بعیده کسی با کسی خوب شه و انداسه ای که تو با من بدی من این شهر رو باید فراموش کنم مثل پرسه هایی که با من زدی بعیده کسی با کسی خوب شه و انداسه ای که تو با من بدی